فصل 27م خدمات پیگیری جنایی مورد توجه دادستان عمومی مشاوره محرمانه مربوط به ویلیام جان ترینر 4 سپتامبر 2009 کاراگاهان از تمامی افرادی که در جریان پرونده فوق بودند بازجویی کردند اوراق و اسناد مربوطه به پیوست ارائه شده است موضوع تحقیقات آقای ویلیام ترینر است. سی و پنج ساله، سهامدار سابق شرکت مدینگلی لوینز واقع در لندن. آقای ترینر در سال 2007 در تصادف خیابانی دچار آسیب شدید نخوایی شد و طبق تشخیص پزشکی از ناحیه مهره شماره 5 و 6 دچار معلولیت شد با حرکاتی بسیار محدود و فقط در یک دست. فرد مذكور به مراقبت های شبانه روزی نیاز داشت. پرونده پزشکی زمینه شده است. در اوراق نوشته شده است که آقای ترینر پیش از سفر به سوئیس تمام مسائل را قانونی کرد. قبلا اظهارنامه رسمی با امضای شاهدان از طرف وکیلشان مایکل لولر به همراه نسخههایی از اسناد مربوطه و مشاوره های کلینیک در اختیار ما قرار گرفته است. خانواده و دوستان آقای ترینر مخالفتشان را با خواسته او برای پایان دادن به زندگیش اعلام کرده بودند. اما با توجه به سوابق پزشکی و اقدامی که برای خودکشی کرد، جزئیات در گزارش بیمارستان که زمیم شده است وجود دارد. نیروی اقلانی و شخصیت قوی نامبرده کسی موفق نشد او را از قصدش باز دارد. حتی فرصت شش ماهه که از طریق مذاکره با او به دست آمده بود به همین منظور بوده است. شایان ذکر است که یکی از افراد زینف در وسیعت نامه دختر پرستاری است که در استخدام آقای ترینر بوده است. دوشیزه لویزا کلارک با توجه به اینکه فرد مسکور مدت کمی برای آقای ترینر کار کرده است، وسعت این سخابتمندی شک است. اما، همه طرفین زینعف میگویند اعتراضی به خواسته آقای ترینر که از نظر قانونی هم مستند شده است ندارند. فرد مذکور بارها مورد های طولانی قرار گرفته است و پلیس متقاعد شده است او تمام تلاشش را برای منصرف کردن آقای ترینر و بازگرداندنش به زندگی به خرج داده است. لطفا تقویم و یادداشت‌های سفرشان را که به پیوست تقدیم شده است ملاحظه فرمایید در اینجا باید اشاره شود که با توجه به جو عمومی مربوط به این پرونده خانم کامیلا ترینر، مادر آقای ویلیام ترینر که قاضی محترم و خبرهی هستند استعفانامه نامه خود را تسلیم کردند طبق اطلاعات واسله مشخص شده است خانم و آقای ترینر اندکی پس از درگذشته پسرشان از یکدیگر جدا شدند. با اینکه خودکشی به کمک پزشک که در کلینیک خارج از کشور انجام می شود مورد حمایت خدمات پیگیری جنایی نمی باشد، اما با توجه به مدارک و اسناد جمع آوری شده، تایید می شود که عملکرد خانواده و پرستاران آقای ترینر در چارچوب رهنمود مربوط به خودکشی به کمک پزشک، و پیگیری احتمالی افراد نزدیک به متوفا بوده است. آقای ترینر واجد شرایط بود. عاقل و بالغ و به میل و اراده خود و با آگاهی کامل چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. هیچ گونه شواهدی دال بر بیماری روحی یا اعمال زور مشاهده نشده است. آقای ترینر با راحت و به روشنی اعلام کرده بود که مایل به خودکشی است. معلولیت آقای ترینر شدید و غیرقابل بازگشت بود. همراهان آقای ترینر نقشی در این خودکشی نداشتند. اقدامات همراهان آقای ترینر را میتوان همکاری حاکی از بیمیلی در برابر خواسته قطعی متوفا تلقی کرد. تمامی افراد مربوطه با تحقیقات پلیس همکاری کرده‌اند. با توجه به حقایق بیان شده، اسناد ضمیمه شده و شخصیت‌های مثبت تمامی افراد این پرونده، اعلام می‌کنم این پرونده مشمول پیگیری جنایی نمی‌شود. در صورتی که هر گونه ادعایی در این رابطه وجود داشته باشد، رئیس پیگیری جنایی رسما اعلام می‌کند که پرونده ترینر هیچ گونه رویه قضایی ایجاد نمی کند. خدمات پیگیری جنایی پرونده ها را جداگانه بررسی کرده و بر اساس شرایط و قابلیت هایشان قضاوت می کند. با بهترین آرزوها، شیلا مکینون خدمات پیگیری جنایی